بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد هفته من درس از دروس شامويل رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليف إمامة رمزي رحمه الله واسكنه وفسيح جناته نزه من باب باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم اون چیزی که در مورد راه رفتن رسول الله صلی الله علیه و آله اومده راه چطور راه می‌رفت؟ هیئت راه رفتنش، روش راه رفتنش. نمی‌دوید، نه یواش می‌رفت، وسط بود. رسول الله صلی الله علیه و آله همه امورش وسط بود. الله هم جل و علا السفارشاش در قران هم همینه. وقصد فی مشیک، وقصد قصد اعتداله، بدون افراد بدون که انسان زیادروی بکنه و نه هم تفریق بکنه نه کوتاهی داشته باشه و نه زیادروی امورش همه وسط باشه از جمله راه رفتن انسان باید وسط باشه نه با عجله و شتاب زدگی و نه با سستی و تنبلی 123مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا قتیبه ابن سعید قال حدثنا ابن لهیعه عن ابی یونس عن ابی هریره رضی الله عنه قال ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له لا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث بعض يام من شنين أم قفتا إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث من حديث زعف درشاس زعف درشاس بخاطر ابن اللهية هم صدوق هم اختلاط کرده هم مدلس اینجا عن عنم کرده که این حدیث از غیر طریقش یعنی از روات دیگری غیر از ابن الهی عمر روایت شده که نوچه ابن حبان در صحیحش روایت میکنه از طریق عمرو بن الحارث از ابو یونس تا آخر اسناد یعنی از غیر از ابو هریره عمرو بن الحارث هم روایت کرده که این روایتو تقویت میکنه هرچند البانی اشاره به ضعفش میکنه ولی خب قابلیت ارتقا رو داره که تقویت بشه و حسن بشه ابو هریره الله عنه میگوید ندیدم چیزی را زیباتر از رسول الله علیه و به قشنگی رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی نگفت که انسانیا نگفت انسانی چیزی هیچ چیزی مخلوقی هیچ چیزی را نه از خورشید و نه از ماهش نه از پرنده و حیوانش و نه از انسانش هیچ چیزی را به زیبایی رسول الله صلی الله علیه و به قشنگیش ندیدم این نهایت حسن زیبایی رسول, رسول الله صلی الله علیه و السلام می که چقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم زیبا بود که ان الشمس تجری فی وجهه انگار که خورشید داره میتابه به صورتش از بس که صورتش روشنه که این شمس تجریفی وجه انگار که خرشی داره میدرخشه در صورت رسول الله علیه الصلاه و السلام و چهره رسول الله علیه الصلاه و السلام این قدر درخشان و روشنه نه اینکه این درخشانی و درخشش رو شما حسی در نظر بگید فکر کنید که رسول الله علیه و السلام بس یک چراقی مثلا روشن نه نه بحث خوش شهرگی رسول الله صلی الله علیه و سلم در بعض از روایت ها ماک دروغ و باطل که نسبت میدن به ابن عباس که میگه در بس به رسول الله صلی الله علیه و سلم سایه نداشت و میارن حالا خصوصا اهل تسوف در کتاباشون این دروغ ها را زیاد به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که را میرف سایه نداشت چرا چون جنسش از نور بود باطل دروغه رسول الله عليه الصلاه و السلام سايه مثل بقیه گفتیم قبلا نم اشاره کردیم نور نبود بلکه میخوابید در مسجد شب که تاریک بود ام عایشه میگه دست میکشیدم دنبال رسول الله علیه الصلاه والسلام که پیداش بکنم در مسجد کجا خوابیده خب اگر نور بود که بعد روشن بود که دیگه پیداش میکرد دیگه نیاز نبود که دست بکشه تو مسجد میگه تا اینکه دستم خورد به پای رسول الله علیه الصلاه و پس رسول الله علیه الصلاه و جنس جنس البقيه بشار انسان ها از گل و خاک از نطفه آفریده شده پدر و مادر داشته و یکی از بنی آدمه یکی از بنی آدمه از فرزندان آدم علیه الصلاه و السلام ما رایت احدن اسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم کسیم ندیدم سارت ال رسول علیه الصلاه و السلام در راه رفتنش کانما الارض این له این زمین به هم دیگر نزدیک شده چسبیده به هم دیگه فاصله ها براش کم شده از بس که رسول الله علیه الصلاه و السلام خوش راه می رفت راهش عنت یعنی راحت بود ورزیده راه میرفت با قدرت راه میرفت نه میاد در وصف این که میخواستم به رسول الله علیه الصلاه و سلام در راه رفتن عادیش بهش برسن نمی رسیدن نهایت ورزیدگی رسول الله علیه و سلام و مستحکمی بدنش جسمش و خصوصا اعتدال رسول الله صلی الله علیه و سلام در جسمش و توانایی جسمش با قدرت راه می رفت نه اینکه خودشو خسته بکنه با تکلف راه بره نه اینکه خودش خصه بکنه بخاطر همین ادامه حدیثی گفت گفت که ان لنجهد انفسنا او لنجهد لنجد أنفسنا وانه لغير مقترث ما بمشقه با سختی خود مو میرسوني برسول الله عليه الصلاة والسلام وانه لغير مقترث قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام نا خيلي عادي بدون تكلف هيج باكو پرواي هم نداشت يعني خيلي راحت عادي راه میرفت ولي ما نه این گفتم نشانه قوت و توانه جسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم میرسونه سادوا بسوة حديث إمامة الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن نبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صباب إن من الحديث بود كابتداي إن كتاب بحث شكار ديم بود در دومین درس بهش اشاره کردیم گفتیم که حدیث زعیفه ولی خب خیلی از اون مباحثی که در متنش بهش اشاره شده در متن روایت در دیگر حادث صحیح هم اومده مثل این قضیه اینجا ابراهیم بن محمد ابن حنفیه گفتیم ابن حنفیه نسبت به بنی حنیفه بود که اون کنیز علی بن نبی طالب که اسمش خوله به گفته شده اسمش خوله هست این محمد از اون زنه محمد ابراهیم ابن محمد ابن علی در اس به خاطر که قاطی نشه با نسبت داده میشه به بنی حنیفه ابراهیم بن محمد ابن حنفیه که این داره از علی بن نبی طالب نخ میکنه که بعد از شهادت علی ابن ابي طالب لما الدنيا اومده يعني انقطاع انجاب بين ابراهيم بن محمد وعلي بن ابي طالب این علات زعافش بودی قبل اشاره کردیم اما متنش کنایه مش تقلعا کانما ينحط من سبب رسول الله صلی الله علیه و چنان بلند میشد پاها رو از زمین بلند میکرد انگار که از سراشیبی داره میاد پایین انگار که داره از یک سراشیبی از بالا به پایین داره با سرعت داره حرکت میکنه این سرعت رسول الله علیه و و سلام در راه رفتن و قدمهای بزرگ برداشتنش تقلع پاها از زمین بلند میکرد پا رو به زمین نمیگشتید یک از مباحثی که اشاره کردیم قبلا این بود رسول پا را از زمین بلند می کرد و بین قدمهاش فاصله بود انگار کس سراشیوی داره میاد به پایین سدوا حديث نواب ترمذي رحمه الله من قياد حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن بي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صباب كأنما ينحط من صباب إن, إن حديثا قبل قبلز إن حديث حدیثش شماره پنج بحثش شد این حدیثم بازم زعف درش هست ولی خب قابلیت تقویت رو داره خصوصا با طروخی که داره قبلا اشاره کردیم علیت ضعفش یه قسمتش مسعودی هست عبدالرحمن ابن عبدالله هست که صدوق اختلاط کرده و بعدیشم عثمان ابن مسلم هست ابن هرمز که حدیثش قوی نیست ولی که گفتیم این نوع روایت ها اگر روایت دیگری از غیر از اینها روايت بشه تقویت میشه خوصا این متنی که شما دارید در متن قبلی دارید و ما قبلش هم هست یعنی قابلیت ارتقار را دارد که به درجه حسن برس علی بن ابی طالب اینجا ردی الله عنه میگوید که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم زمانی که راه میرفت رو به جلو راه میرفت تکفه تکفه یعنی پا به جلو بر از زمینم پا بلند میکرد که انمین حطو من صبب انگار که سراشیوی داره میاد به پایین. خب این خلاصه راه رفتن رسول الله علیه الصلاه و السلام بیستومین باب امام ترمیدی رحمه الله میگوید باب ما جایه فی تقنع رسول الله صلی الله عليه وسلم قناعه پوشیدن سر و سورت پوشیدن سر و سورت با پارچهی بهش میگن تقنع از, از روپوشیه اون چیزی که سر یا صورت را با اون میپوشونیم خب رسول الله صلی اللہ علیه و سلم یاد شد قبلا گفتیم گاهی اگر سرش رو روغم میزدن با پارچه سرشون رو میپوشوندن به خاطر اینکه اون روغن سرازیر نشه به لباسش و لباسش آخشته به اون روغنه بشه و کسیف بشه این نظافت رسول الله رو علیه سلاط و سلام رسونه. 126 من حديث امام الترمذي رحمه الله يقول حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر كأن ثوبه ثوب زيات حدیث زعیف قبلا نشاره کردیم گفتیم مخالفت داره با دیگر احادیث رسول الله علیه ساته وسلم علت زعفشم قبلا نشاره کردیم در حدیث شماره سی و سه میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاد از این پارچه برای پوشوندن سرش استفاده می‌کرد برای اینکه گفتیم حالا لباسش آغشته به روغن نشه فقط یعنی برای پوشش سرش از این پارچه استفاده می‌کرد زیاد به سرش خوب پوشونه میگه ولی با این وجود از بس که رسول الله صلی الله علیه و آله روغن استفاده می‌کرد اون پارچه جلو به روغن رو نمی گرفت اون روغن به لباس رسول الله صلی الله علیه و آله سرازیر می‌شد که انتبه و توبه زگیات انکار که کسی که با روغن سر و کار داره کارش چیه درست کردن روغن یعنی این قد لباس رسول الله صلی الله علیه و آله کشیف بوده گفتیم این تعارض داره با دیگر احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ولی خب چون اینجا یک حدیث بیشتر نیورد در این باب داریم احادیث صحیح دیگر که اومده رسول الله صلی الله علیه و سلم اون پارچه استفاده نکنن و پارچه نداشته باشن که صورت خودشان و سر خودشان رو بپوشونن نداشتن مثل حدیثی که در صحیح بخاری داری در قصه هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه با ابوبکر صدیق میگه که ما نشسته بودیم بینما نحن یوم جلوس اموین عشر رضی الله عنهم میگه من وباقیه ابو ابوبکر صدیق نشسته بودیم در خونهمون خونه پدرم ابوبکر ما نحن جلوس فی بیت ابوبکر فی نحر الظهر در شدت گرمای تابستان. اونم ظهر وسط روز نشسته بودیم توی خونه حدیثم در صحیح بخاری صحیح میگه که یکی از ماها یکی از اونجا جمع گفت به ابوبکر شدیخ هذا رسول الله متقنع چون رسول الله سلام وارد شد صورت خودش خودشو پوشنده بود یک فنا عیداش یک پارچه داشت هم سر خودشو هم صورت خودشو پوشونده بود ابوبکر صدیق ندونست که ی رسول الله علیه الصلاه و السلام بعد یک اشاره کرد گفت که اینکه صورتشو پوشونده پیغمبر علیه الصلاه و السلام الا به خاطر اینکه کسی رو نبینه نفهمه که اومده پیش او ابوبکر صدیق چون قص هجراتو داشته اومده این مزدگانی را هم بده این امادیگی رو بده به ابوبکر صدیق بو دیگر هجرت بکنه حالا قصش دولانیه خاطر همین ابن قیمام این قضیه رو در زاد مواجهه اشاره میکنه و میگه انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعه این کارو کرد تا اینکه کسی را نشناسه ففعله فعله للحاجه عادت و لم تكن عادته همیشه سر مش سرت خودشو نمیپوشوندن اینجا برای این نیاز این کارو کردن 21 ویم باب باب ما جاء في جلسه رسول الله صلی الله عليه وسلم نشستن رسول الله عليه الصلاه و السلام چگونه می نشستن حالا البته اینجا یک اشاره شده به نوعی نشاستن در ما بقي بازم انواع دیگری خواهیم داشت اینجا شما سه تا حدیث دارید بازم در عباب دیگر بیش از این حدیث خواهیم داشت که انواع دیگری از نوع نشستن رسول الله صلی علیه وسلم اونجا هم بحثش خواهد اومد سد و حفتمين حديث نمامة الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرقيين قبلا یاد شد این حدیث زیفه بعضی جاهاش قابلیت تقویت رو داره مثل اینجا این نور نشستنی که در این حدیث یاد شده حدیث شماره 66 بود که ما داشتیم اونجوری که بحث لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌کرد قیل که رسول الله علیه و سلم روزی لباسی پوشیده بود کهنه بود که رنگش عوض شده بود رنگش زعفرانی بود نارنجی بود که چون کهنه شده بود رنگش عوض شده بود رسول الله علیه و سلم پوشیده بود که گفتیم حدیثش اون قسمت شاهدی برش نیست ضعیفه ولی اینجا این نوع نشاستن رسول الله علیه و سلم اومده در روایت‌های دیگر بهش اشاره شده میگه قیل میگه دیدم رسول الله رسل الله علیه و در مسجد که نشسته بود چوبونه نشسته بود؟ قرفسا نشسته بود قرفسا چیه؟ نوع نشستن قرفسا اینه که شخص زانو رو بالا بیاره دوتا زانوها رو بالا بیاره و دوتا دستهای خودش را دور زانوهاش بکنه و یکی از رو با کف دست دیگری موچ دستش رو بگیره. حالا یا با لباس یا با پارچه حالا با لونگه با هر نوع پارچه ای حسان وقتی که یه چیزی نباشه انسان تکیه بهش بده این کار انجام میده به خاطر اینکه خسته نشه این نوع نشستن اول قرفصه این نوع اول قرفصه که بهش احتباه هم گفته میشه قسم ران پا رو به شکمت بچسبونی و زانوها تو در وسط دوتا دست قرار بدی یا در وسط اون ای که به کمرت بستی این نوع اولش احتباه گفته میشه قرفصه هم گفته میشه نوع دوم مثل نشستن در ولی ولیکن با یک تفاوتی با اونم اینکه شخص شکم خودش را به رانه های خودش بچسبونه و خصوصا دست های خودش را دست های خودش زیر بغلش قرار بده حالت آماده باش داره یک یعنی حالت مثلا میخواد شخص مثلا یا بلند بشه یا تکیه کرده به زانوهاش خسته شده یا آخر نوع حیعتش اینطوریه هرچند که این بس هم اومده که یعنی شکم خودشان بچسونه برون پاش اونجا چون حدیث ضعیفه فقط به همین قد اکتفا میکنه قالت فلما ما رسول الله صل الله عليه وسلم المتخشع في الجلسه وقتی که دیدم رسول الله صلی الله عليه وسلم اینجنین با خشوع اینجنین تمرکز کرده اینجنین جدی نشسته ورعت من ترسیدم ورعت من الفرق الفرق الخوف یعنی ترس تمامی وجودم رو گرفت لرزیدم خودم از ترس ورعت یعنی دچار اغتعو الشدام سادوا بيستهاشتمين حديث إمام الترمذي رحمه الله ميقوياد حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى حديث هيه این حدیث یکی از نمونه های دراز کشیدن رسول الله صلی الله علیه وسلم یک نوع نشستن و دراز کشیدن هر دوتا درش هست چون این کار را انسان هم میتونه به هنگام نشستن انجام بده هم به هنگام دراز کشیدن اونم اینجا حالا واسپش که در این حدیث اومده در حدیث عباد بن تمیم از عموی خودش که اینجا در این حدیث داریم حدیث اصلش هم در صحیح بخاری و مسلم صحیح است عموی عباد بن تمیم عبد الله اس بن زید بن عاصم عبد الله بن زید بن عاصم رضی الله عنه یکی از بزرگان صحابه است که جز صحابی بدری هست در جنگ بدر بوده دیگه فضل اهل بدرم هم شما میدونید همه مشاهد همه غزوات بر رسول الله صلی الله علیه و salam بوده و این صحابی کسی که اومد به رسول صلی الله علیه و salam مجدد داد که در خواب نحوی از آن گفتن را الله جل و علا در خوابش ورده و رسول الله علیه و سلام تایید میکنه اون خوابش و کسی بود که هم در جنگ با مسلمین کذاب شرکت کرده جز سربازان و جز تابع یاران بزرگ رسول الله علیه و جز جزء رده های اولش عبدالله بن زید بن عاصم رضی الله عنه خب اینجا عباد بن تمیم از امویش عبدالله بن زید داره نقل میکنه میگه که دیدم رسول الله صلی علیه و سلام که در مسجد دراز کشیده در مسجد دراز کشیده، رو بالا خوابیده. کمرش، پشتش به پایین و رو چهرهش به بالا. دراز کشیده، بالا رو به بالا. نحوه خوابیدن چون بعضیا حالا از باب تذکر و یادآوری میگم، بعضیا رو به شکمشون می سرشون به پایین. این نحوه خوابیدن را رسول الله صلی الله علیه و منعش کردن و میفرمایند که الله دوست نداره این نحوه خوابیدن. خوابیدن رو, رو شکم. برای اینکه شخصی رو بالا بخوابه. کمرش به پایین، شکمش به بالا، صورتش به بالا، مشکلی درش نیست. فقط یک اینجا محل اشکالی هست در این روایت. خب رسول الله علیه و السلام از اینکه کسی پاروپا پا بندازه، از اینکه کسی پاروپا پا بندازه در مسجد من کرده. ولی اینجا عبدالله بن زید بن حاصم میگه که دیدم رسول الله صلی دراز در کشیده و پاروپا رو پا گذاشته. پارا رو پا گذاشته. حالا نحوه پا پا گذاشتن مو انواع داریم. مثلاً پاروپا پا گذاشتن میشه شخص تکیه بده و یکی از پاها رو پا بذاره یا همینطور که الان هیئت شما داره ببینیم من پای راستو رو گذاشتم روی زانوی چپم حالا روی صندلی میشه میتونم همین طورم دراز بکشم و پا رو اینطوری من بذارم بالا یا دو تا پا رو بالا بکنم خب الان شما من این کارو کردم تو شلوار پوشیدم مزنه کشف عورت نیست یعنی مطمئنم اینکه عورتم مکشوف نمیشه شلوار پوشیدم ولی که رسول الله علیه و عادتش چی بود ازار بپوشه، لنگ بپوشه، در پوشیدن لنگ که تجربه شد رمی دونان اگر دو پارو بالا بردی احتمال کشف عورات هس هست یونیس هست بخاطر همین که رسول الله صلی الله علیه و من سلم منعش کردن در حدیث سلم در صحیح مسلم حدیث جوابه رضی اللہ عنه نها اینها صلی الله علیه و سلم عن اجتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد و آن یرفع رجل یه احده رجله علی الاخره و هو مستلق علی ظهره. سته چیز داریم حدیث مداکن رسول الله علیه صلی و من که اولی این که شخص خودشو با یک پارچه فقط بپوشونه لخت بر زیر مثلا یک لاهفی با یک پارچه خودشو بپوشنه. آره نیاز داره چیزی بلند بکنه دستش بخواد بیرون بیاره. آرهش مکشوف میشه. آرهش نمایان میشه. اینو رسول الله عليه صلی و سلم منش که عنشتمال صم خودشو با یک پارچه بپوشنه. و احتباء في ثوب واحد احتباء که که گفتی در یک لباس تو بیای احتباه بکنی دست و دور زنود بکنی پاهاتو تو بالا بیاری یک لباس هم پوشیدی لنگ پوشیدی احتمال کشف عورتت هست یا نیست؟ هست محسول الله علیه السلام منش کرده و ان یرفع الرجل احدى رجليه علی الاخرى اینکه شخص یک پاهاشو روی پای دیگری بندازه و هو مستلقا علی ظهره در حالی که دراز کشیده مثل مو حالت احتباب در یک لباس چون احتمال کشف عورت هست رسول الله علیه و سلام من کرده و اینجا هم رسول الله صلی الله علیه خودش این کارو کرده چطور جنب بندی بین این دوتا تا میگیم که رسول الله کرده به خاطر چی سد زریعه ذریعه شیه کشف عورات چون اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله این ذریعه نبود توش احتمالاً شعر و پوشیده مطمئن اینکه کشف عورت نمیشه دراز کشیده پاروپا انداخته و یا اینکه کسی نبوده جز خودش یه گوشه رفته کسی نبوده اومده پارو رو پا انداخته در حالتی که این ذریعه نباشه این مزنه نباشه این مسئله رخ نده که کسی عورت ما را ببینه مشکلی نیست همونطور که رسول الله علیه و آله و انداخته همونطور که پارو پا انداخته اشکال نداره چه در نشاستن مون در دراز کشیدنمون این که پا رو پا بندازیم چنان چرا صدا علی اساسا پا رو پا ولی که اگر گمانمون بر این رفت که عورتمون شاید کشف بشه نمایان بشه اون فعل بر ما حرامه اون فعل بر ما حرامه دوت مواظب عورتمون باش 129 حدیث واخرين حديث باب إمام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصار عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه حديث صحيح حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدر مسجد مينشاس به حالت احتبا می نشسته احتبا گفتیم مثلا قرفوسی که قبلا داشتین اینکه انسان رانش رو بچسب بشه کمش و ساق پاشم بیاره بالا لازم هم نیست که این ساق پا به رانش بچسبه لازم هم نیست مهم چیه این حالت نشستن اینکه دست یا پارچه یا لونگی که داریم یا دسمالی که داریم دور کمرمون من دور پا ما بکنیم که خسته نشیم خوصا خسن جایی که تکیه نداریم شخص دست را دور دو تا زانوها دو تا پاش بکنه و ران پاش رو را به شکمش بچسبنه این حالت بهش میگن چی؟ احتبا احتبا بالاوردن زانوها به بالا و چسبندن ران به شکم قدیما میگفتن یه احتبا و حیطان و العرب احتبا چیه؟ تکیه کم بود، منازل کم بود، به تکیه دادن کم بود، برای اینکه تکیه گاه داشته باشن، می کردن یا با دست خودشون یا با پاچه دور کمرشون. هنوز این عادت و رسم بین بلوچا هست و اهل یمن هم همینطور. هنوز اون لنگ خاص خودشون دارن یا اون دسمالشون دور کمرشون می‌کنن، جایی که سخرانی صحبت کلاس درس، همچنان از این روش استفاده می‌کنن. هنوز غیر از عرب‌ها هم این کارو می‌کنه، بلوچا هم می‌کنن. این نون شناختن رو دارن. حدیث دیگری هم داریم که بعداً هم خواهد آمد من یک حدیث دیگه را مشاره بکنم اینجا در نوع نشاستن رسول الله علیه و صلی الله علیه و سلم همین نشاستنی که من دارم در سونه نبی داریم با دار سند صحیح از جابر بن سمره رضی الله عنه داریم در سونه نبی داوود با صحیح داریم که میگوید تن النبی صلی الله علیه و سلم اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسن رسول الله صلی الله عليه و بعد از یک فجر رو می خوندن می نشستن در همون جایی که نماز خوندن خانه نبیشون اذا صلى الفجر زمانی که نماز فجر رو می خوندن تربع فی مجلسه چهار زانو می حالا در اصلاح جنوبی ها کرسی هم بهش گفته میشه این نحوه نشستن اینه که یک از پاهای پای چپ یا پای راست زیر ساق دیگری از اون پاها قرار داده بشه چهار زانو هم بهش گفته میشه و اینجا تربع یاد شده که به همون شکل مربع، شکل نشستنه تقریبا به هيئت مربع در میاد این نحوه نشستن بهش میگن تربع، رسول الله عليه الصلاه والسلام بعد از اینکه نمازشو میخوند، اینطور راحت مینشست. یکی از پاها را زیر ساق پای دیگری میبرد و مینشست تا اینکه خورشید بالا بیاد. حتى تطلع الشمس حسنا یعنی خورشید نمایان بشه. خورشید بیاد بالا اون وقتم وقت نماز دحا در اول وقت خوندن که ثواب حج رفتن و رفتن رو داره این که انسان بنشینه تا اینکه خورشید بالا بیاد رسول الله صلی الله علیه و سلم عملا اون چیزی که بهش توصیه کردن اینجا خودش انجام دادن و این صحابی جابر بن سمره رضی الله عنه داره بهمون به نقل میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از ما صبح سر جاشون مینشستن اونم چهار زانو سر جاشون تا اینکه خورشید بالا بیاد خب این نحوهی نشستن رسول الله علیه و صلوا و انواي که در این احادیث یاد شده سبحانك الله سبحان و حمدك سبحان الله و الحمد و صلی الله محمد و علی محمد